mars haye danesh barname az arjuman ostadan va pazhooshgeran edani میدان عزیز استتون بخیر من کامران ابدینی هستم مهماندار این ساعت برنامه مرسا دانش این برنامه هفته ای یک بار در چنین ساعتی توسط همکاری انجمن استادان پژوهشگران ایرانی و کی آر ان رادیو ایران به شما هدیه میشه که در آن با متخصصین عالی علوم مختلف گفتگو داریم و باز همین چند هفته ای که شانس داریم که همسایه دکتر نگری اسین در برنامه شون باز هم یادآوری میکنم که چون ترجیح میدیم که آقاییها رو کامل و همه جانبه و از نظرات مختلف توسط پژوهشگران و سلطانی ایرانی تبادل به اطلاعاتم میرسونیم برنامه ما بدون هیچ گونه تبعیزی برای سیاست نجات مذهب جنسیت و روش فکری ارائه میشه برای آقایی بیشتر از خدمات این انجامنده و یا باشی نوی باشی نویی برنامههای مرسای دانش میتونین به سایت اینترنتی apsi.org A P like professors S like Sam I like Iranian H like heritage نخده O R G سه حرف اول ارگانیزاسیون مراجعه فرماین کارگران افغانی برنامه‌همم متوقع معمول جناب آقای حجیر هستند که خیلی ممنونیم که به ما اینجا کمک می‌کنند. در ضمن اگر هم فرصتی بود در قسمت آخر برنامه می تونین باگیرفتنش شماره 300 و 225 و 1127224 سوالات خود را در مورد وعده امروز در میان بگذارین. میهمان ارجمنده امروز برنامه ما خانم دکتر تیناد گیورات می باشند که راجع به اعمال مرز انسان و مخصوصا مرز نوجوانان صحبت خواهند کرد و از شنوندگان خواهش می کنم که حتما به دوستانی که نوجوان در خانه دارند گوش داد کنند که به این برنامه به دقت گوش بدن خانم دکتر تیناد گیورات پس از گرفتن فوکوس به عنوان مهندس سیستم‌ها با شرکت بوئینگ کار کرده و سپس به دانشگاه برگشته و در رشته بایومدیکال انجینیرینگ در دانشگاه یو اس سی موفق به اخذ درجه دکترا شدند. در همین دانشگاه ایشون به تحقیقات خود در رشته روانپزشکی و چگونگی طرح دستگاه‌هایی که بتونه اعمال مغز رو ضبط بکنه تا بتواند بفهمان که در چند لحظهی مرز انسان به حالت همله درمیاد ادامه بدند. انشالله من تونستم یه تعریفش کنم. البته شما مثل اتشاراتی نو بهتر میتونی. البته تجربه بیشتر ایشون در اعمال مغز نوجوانان بین 13 تا 25 سالگی است و به این خاطر سیستم‌های مختلف آموزش و پرورش از ایشان به عنوان مشاور استفاده کردند که بتونند آگاهی بهتری را به معلمین و والدین دانش‌آموزان و دانشجویانشون بدن خب سرکار خانم دکتر تینا گیوراد به برنامه مرصاد دانش خوشامد میگم سلام های دکتر ابدینی شنوندگان عزیز قبل از اینکه مطلب مورد نظر رو برای صحبت امروز شروع کنیم من می‌خواستم که از شما تشکری داشته باشم که این فرصت رو به وجود آوردین که امروز صحبتی رو در مورد مراحل تکاملی مغز نوجوانان با هم داشته باشیم من یک مختصری راجع به باک‌گراند خودم که چه جوری با این زمینه بیشتر آشناسه شدم داشته باشم. همونجوری که فرمودیم من دوره دکترار رو در زمینه مهندسی پزشکی یا biomedical engineering تامم کردم. کل من در دوره دکترا طراحی و ساختن یک ایمپلنتی بود که میتونست فعالیت‌های مغز رو زمانی که ما یک رفتار به خصوص مثل خوشونت رو مطالعه می‌کردیم ضبط بکنه و بعداً ما با استفاده از علم نوروساینس و برین مپینگ می اومدیم و فعل و انفعالات مغز رو تجزیه و تحلیل می‌کردیم من بعد از تمام کردن دوره دکترا 4 سال به عنوان پست داکتoral ریسرچ اسوسیییت در دپارتمان سایکاٹری اند بیهیویر آساین تحقیق کردم. در اون زمان بودش که به مراحل تکمیلی مغز تینیجر خیلی علاقه مند شدم و از اونجایی که همیشه به تدریس هم خیلی علاقه داشتم، یه دوره فشرده 1 ساله رو در USC در سنر فور اکسلنس این تیچینگ گذروندم که اونجا فقط تکنیک‌های تدریس و یاد گرفتم و بعد از اون هم کلاسای رو یاد گرفتم که در مورد اینکه مغز انسان و به خصوص مغز نوجوانان چجوری میتونه یاد بگیره بیشتر ترینینگ گرفتم ممکنه چون بک‌گراند من در الکتریکال انجینیرینگ بوده این به من کمک کرده که یه مقدار بهتر بتونم که کامیونیکیشن سلول‌های مغز رو با هم دیگه بهتر متوجه بشم و جالب اینه که خیلی از اصولی که ما امروز در مورد مدارهای الکتریکی یاد گرفتیم دقیقاً در مورد مغز انسان هم صادقه و مغز انسان شباهت‌های بسیار زیادی رو با کامپیوتر داره اما میدونیم که مغز انسان پیچیده‌ترین کامپیوتریه که در تمام دنیا وجود داره ما باید در نظر داشته باشیم که پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین کامپیوترهای دنیا رو مغز انسانای خیلی جنی استرایی کردن هر کاری رو که ما به طور ارادی و یا غیر ارادی در لحظه انجام میدیم به وسیله مغز ما بررسی و برنامه‌ریزی میشه برای همینه که ما به درستی میتونیم بگیم که ما مغزمون هستیم متاسفانه اطلاعی که ما در مورد مغز انسان داریم بسیار ناقصه و عرشه ما در 50 سال گذشته خیلی بیشتر از 5000 سال گذشته. تونستیم که عمل کرده مغز رو تا حدودی متفاوت بشیم، ولی مسئله اینجاست که با جواب دادن هر سوالی ما 100 ها سوال دیگر در مورد عمل کرده مغز برایمون مطرح میشه. حالا مم خب ببینیم که از چه زمانی ازند دانشمندان شروع به مطالعه ای مراحل تکاملی مغز نوجوانان کرد. تحقیقاتی که در مورد مراحل تکاملی مغز نوجوانان از دهه قبل شاید تاولی سال 200 شروع شد. برای ما اطلاعات بسیار مفید و جدیدی را آورد که می تونه برای نوجوانان بسیار مورد استفاده باشه. 15 سال پیش دانشمندا فکر می‌کردن که مغز انسان مراحل تکاملیش رو در دوره جنینی شروع می‌کنه و در نهایت تا قبل از 2 سالگی این روند کامل میشه اما 15 سال پیش پیشرفت‌های تکنولوژی در علم پزشکی به اندازه الان کامل نشده بود یک از پیشگامان تحقیقات در مورد مغز نوجوانان دانشمندی به نام دکتر جی گیت هستن اشون یک تحقیق علمی رو با حمایت مالی نشنال اینستیتوت اف منتال هلت شروع کردن این تحقیق به این صورت بود که یه عده کودکانی رو در حدود سن 9 سالگی انتخاب کردن و این بچه‌ها رو در فاصله زمانی هر دو سال یک بار با ماشینای ام‌آر‌آی برین اسکن کردن در این زمان بود که تازه دانشمندا متوجه شدن که مرحله دیگه‌ای هم در مسیر تکاملی مغز انسان وجود داره و این مرحله در زمان نوجوانی اتفاق می‌افتاد اون نوجوانی رو پس از شروع نوجوانی رو شما در حدود مثلا 9 تا 10 سالگی میگین یا اینکه مثلا همون 12 تا 13 سالگیه. سال خیلی دید. خوبیه. ببینید ما یه پری تینیج ایر داریم که بین 9 سالگی تا 13 سالگیه و بعد تینیج ایرز داریم. ولی تینیج ایرز هرچه‌ بای دیفینیشن در 19 سالگی تموم میشه ولی در حقیقت این ام پروسس تا اواسط 25 سالگی شاید شاید شاید بیشتر از 25 سالگی هم ادامه پیدا می‌کنه ولی برای اینکه ما کمی بیشتر بتونیم این مسئله رو پیش‌گافیم باید یه نگاه کلی رو به این مرحله تکاملی مغز انسان داشته باشیم این مرحله تکاملی به این صورته که حدوداً بین سن 9 تا 13 سالگی ما دومین مرحله گروث اسپرت یا ساخت شدن سلول‌های جدید فراوانی رو در مغز یک نوجوان می‌بینیم. این قسمت بیولوژیه و ما هیچ کنترلی در مورد اون نداریم. در این مرحله طبیعت سر تکاملی خودش رو طی می‌کنه. امو بالغ در این مرحله است که یک نوجوان وارد مرحله‌ای میشه به نام پونینگ و این زمانیه که یک نوجوان میتونه تصمیم بگیره که چه جوری میخواد مغزشو اسکال کنه چه جوری میخواد توانایی های مغزشو به حد اکثر میزانی که برای اون شخص به خصوص امکان داره برسونه و میتونه با توجه به فعالیت هایی که انتخاب میکنه انجام بده تواناییای مغزشو به حد اکثر برسونه یعنی خودت خودت این, خودت این خود اون شخص میتونه کنترل داشته باشه که بگه من میخوام مثلا این این فعالیتا رو بکنم که مغزم پیشرفت بکنه تکامل یابد دقیقاً همینطوره میدونیم مثلا این شخص چرا به ما زودتر نگفته بودین اینو ای کاش خود ما میدونستیم ای کاش نه. واقعاً من همیشه خودم فکم کردم اگرچه این مطالبه من در زمان نوجوانی خودم می دونستم و بهتر می تونستم مزامحات بایار کنم. خیلی ممنونم و تشکر اگر چه زودی از ابتدای نوجویی بیخزنیم و بعدم بر می گردیم. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یادی.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 La fuhrer hooge doktor Kamran Yedidi in Berne Hills, Sherman Oaks, Glendale, Woodland Hills va Erwin. Heißer der 818 999 9999 oder -99 818 همش نو تصادف.com It's 6:47 AM Los Angeles. رازهای دانش برنامه‌ای از ارجمندان و استادان و پژوهشگران ایرانی استاد عزیز کامران ابدینی هستم در خدمت خانم دکتر تینا گیورات هستیم و راجع به هکاملا مرز و مخصوصا مرز نوجوانان داریم صحبت میکنیم و خواستم خواهش کنم که توضیح بیشتری در مورد مرحله پرینگ بدن و فارسیش رو شما ترجمه کردیم به اسم حراز کردن لحن که و... مرحله پرینگ مرزی یک نوجوان شباهت بسیار زیادی به قطع کردن شاخه های اضافه ی یک گل روز دارد. ما می دونیم که در زمستان معمولا ما شاخه ای اضافی گل روز و رو قات می کنیم و دلیل این کار اینه که میخوایم شاخه اصلی قوی تر بشه. درست همین لوجیک در مورد مغز یک نوجوان وجود دارد. در حدود 13 سالگی تعداد سلول های مغز یک نوجوان 200 میلیونه. یه ادم بزرگ سال که منظورمون سن 25 سالگی به بعد فقط 100 میلیارد سل در مغزش داره ما میبینیم که نسبی از سلولهای مغز ما بین سن بلوغ تا سن بزرگسالی که اون 25 سالگی شناخته شده از بین میرن میگی ما سلاح خودمون کنترل میتونیم بکنیم که از بین نره ببین از بین میره ولی ما چه قسمتی رو میخوایم نگهداری کنیم چه قسمتی رو میخوایم از اس بدیم الان من اینو یکمی بیشتر توضیح میدم دلیل اینکه ما نسبه این سلولا رو باید از دست بدیم اینه که بدن به اندازه کافی مواد غذایی رو نخواهد داشت که تمام این سلول ها رو تغذیه کنه اصلی که دانشمندا فکر میکنن بر اساس اون بعضی از این سلول ها نجات پیدا میکنن و زنده میمونن و بقیه دیگه از بین میرن یوز ایت اور لوز ایت هستش بین منا که فعالیت هایی که یه تینیجر انتخاب میکنه و بین سنین 13 تا 25 سالگی انجام میده باعث شکل دادن مغزش میشه قسمت هایی از مغز که مورد استفاده بیشتر قرار میگیره خون بیشتری رو جذب میکنه و مواد تغذیه‌ای میگیره و زنده میمونه و قسمت هایی که مورد استفاده قرار نگرفته چون خون به این قسمتا نرسیده این سلول‌ها از بین میرن و جذب بدن میشن سو so, uh, آلاما دیگه فکر کنیم اگر که یه بچه‌ای داره بین 13 تا 25 سالگی وقتش رو می‌ذاره نواختن یک آلت موسیقی رو یاد می‌گیره یا داره آکادمی کار می‌کنه یا داره یک فن و هنری رو یاد می‌گیره این بچه داره اون قسمت‌های مغز رو فید می‌کنه و ان قسمت هان که زنده میمونن ولی اگر نشسته جلو تلویزیون و داره در تمام مدت یه بعضی کامپیوتر رو میکنه داره ان قسمت ها فید میشه ما بعضم بیشتر راجع به این توضیح خواهیم داد حالا ما میخوایم بدانیم اصلا با این اطلاعاتی که ما داریم چی کار میتونیم بکنیم و چه جوری میتونیم مزاش برای نوجوانان استفاده بکنیم هدف ما اینه که به نوجوانها کمک کنیم که درگیر فعالیت هایی بشه که به اونا کو ماکانه توانایی مغزش نو به حد دیگر برسه. حالا اینجا خوبه که ما با عمل کردن سه قسمت مختلف مغز بیشتر آنش نو بشه. قسمت اول براينستم یا ساقه مغز. صخیمس مسئولیت تمام کارهای غیر ارادی بدن ما رو که لازمه زنده موندنمونه به عهده داره مثل نفس کشیدن ضربان قلب جریان خون اینا چیزاییه که ما فکر نمیکنیم راجبشو انجام میدیم واسن حق انتخابی نداریم باید انجام بشه برن استم یه قسمتی از مغزه که در انسان و حیوانات شباهت خیلی زیادی به هم دارن دو تا قسمت بعدی که شاید به نفعیم بتوانیم بگیم که موتزاد هم اعمال می کنند یکی امیگدلاس و دیگری پریفرانتال کورتекс. امیگدلاس قسمتی از مغزه که مسئولیت اکسل عملهای ما رو در زمانی ترس به اوج دارد. زمانی که جریان خون به سمت امیگدلاس هدایت میشه و امیگدلاس فعال میشه، مدت دیگه مسئله رو تجزیه و تحلیل نمی کنیم. اگر خدا این نکرده الان یک زلزله ای پیش بیاد یا آتش سوزی بشه. منو شما اینجا دیگه نمیشنیم با خیال راحت سو بات بکنیم. به لفظ سلی یه راه فراری رو میخوایم از اینجا پیدا کنیم. عکس العملی که انسان در زمان فعالیت عمیق دلنشون میده، معمولاً به سه قسمت تقسیم میشن: فایت که جنگیدن، فایت که فرار کردن، یا فریز که فریز میشه. حالا ما ببینیم که چه زمانی عمیق دلها سان فعال میشه. معمولاً امید دلای در زمانی که ما باید تغییری مواجه میشیم کس قبلاً نمی دونیم باید با اون به چه سرعت برخورد کنیم فعال میشه. ما می دونیم که بر اساس تعریف سالهای نوجوانی سالهایی هنگ که بدن چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ اساسی دچار تغییرات هواول میشه. و چون یه نوجوان نمی دونه که باید به چه سرعت با این تغییرات برخورد بکنه برای همینه که در صورت طبیعی امیگدلا در زمان نوجوانی بسیار فعاله یادتون باشه که امیگدلا قسمتی از مغزه که فکر نمیکنه مسائل رو تجزیه و تحلیل نمیکنه و آینده رو بر اساس حال حاضر و کارهایی که در الان انجام میشه پیش بینی نمیکنه کار امیگدلا بیشتر حالت هال جکینگ رو داره همونی که یه هواپیمای دزدیده میشه دیگه اختیار اون هواپیما به عهده اون خلبانی که بر اساس یک سری آموزش‌ها و برنامه‌هایی میدونه چه جوری این هواپیما رو با سلامت و آرامش در یه فرودگاه فرود بیاره دیگه اختیار اون هواپیما دست خلبان نیست در اختیار یه افرادی که هدف‌های دیگه‌ای دارن و اینجا ام زمانی که اختیار تصمیم گیری به عهده امیگدلا باشه ما عکس العمل های ریسک تیکینگ رو میبینیم ریسکایی که هیچ وقت حساب و کتابی توش نیست همه ما شاید به عنوان ادالت زمانی رو تجربه کرده باشیم که به جای اینکه این مساله رو تجزیه و تحلیل کنیم خیلی عصبانی میشیم شاید فریادی بکشیم رفتار ناخوشایندی رو داشته باشیم که بعدم پشیمون میشیم این رفتار رو بدون اینکه همیشه امیگدلا داره راهبری می‌کنه. اینجاست که ما به عنوان پدر و مادر یا کسایی که به هر صورتی با نوجوانان در ارتباطیم، باید متوجه باشیم که اشتباهات نوجوانان یه مقدار زیادیش علت بایولوژی و ما نمیتونیم همه تقصیرها رو به گردن بچا بذاریم. و یادمون باشه که ما خودمون این دوره رو گذروندیم. اشتباهات خودمون رو به میزان امکاناتی که داشتیم گذروندیم. اگر من در 16 سالگی تصادف رانندگی بدی نداشتم به خاطر این بوده که من رانندگی نمی‌کردم در 16 سالگی. بنابراین این یه مقدار این مسائل واقعا به خاطر امکاناتیه که بچه‌ها الان دارن و ما شاید موقعی نداشتیم. الو در مورد قسمت سوم که پریفرونتال کورتکس یک کمی صحبت بکنیم. این قسمت قسمت فرماندهی مغز. این قسمت قسمتی از مغز که انسان رو برتر از همه موجودات دیگه می‌کنه. پریفرونتال کورتکس خارجی‌ترین لایه مغز که مسئولیت کارهای حساب شده و عاقلانه ما رو به عهده داره. متوسط این قسمت از مغز که میتونیم آینده رو بر اساس کاری که در حال حاضر می کنیم پیش بینی بکنیم. پریفرنتال لوب به ما کمک میکنه که صحبتی نکنیم و یا کاری انجام ندیم که باعث پشیمونیمون بشه. متاسفانه این قسمت از مغز در دوره نوجوانی مراحل تکمیلی خودش رو تمام نکرده و اینجاست که امیدواریم که بچه‌ها این مساله رو بدونن و قبول کنن و به ما به عنوان پدر و مادر کمک کنن که بتونیم بهشون کمک بکنی. اما اونی که میگن اون که اس که نداند و نداند که نداند این نین تینیج برین دیکشن ما نمیفرمائین نمیدونه که چه چی چیزایی رو نمیدونه واسه همین چه جوری میتونه بر حسب تکاملش کار بکنه. دکتر بدینی من یک از کلاسایی رو که خیلی دوست دارم هر سال در یو اس سی میگیرم. Research ethics و scientific integrity. و خیلی من سری کلاس با بچه های تیمیدر سوبد می کنم، می بینم که چقدر اینا اتیکس رو دارن و اینا با زبون ساینس چقدر خوب رابطه برقرار می کنن. من یک قسمتی از کارم که خیلی دوست دارم همیشه بعد از سوبدایی که با تیمیدرادارم وان تو وان می شنم باهاشون سوبد می کنم و ازشون خواست می کنم که فیدبک بدن، راجع به اطلاعاتی رو که من بهشون دادم. من میبینم که بچه‌ها واقعا اوپنن خیلی دوست دارن که اینا رو بدن ولی گرفتارن میدونید یه مساله اساسی نوجوانا پیر گروپ پرشر هست بچه‌ها تو در موقعیتی ان که باید مثل بقیه باشند و من فکر میکنم تنها راهی که ما داریم اینه که به جای اینکه مسئولیت بزرگو بیشتر گردانه پدر مادرها بذاریم، بیان بچهها رو اجکت کنیم و به آنها کمک کنیم که تصمیم درست رو بگیرن. ما یه مثالی رو میخواستم بزنم که ما این سیستم رو یک کمی بهتر به فهمیم. ما اگه یه سیستم مخارج و درامد رو درآمد در نظر بگیریم، بزarin امیگدلا رو مخارج اون سیستم بدونیم و پریفرونتال کورتکس رو درآمد این سیستم بدونیم. ما اگه 1000 دلار مخارج داشته باشیم، 1000 دلار درآمد داشته باشیم، میدونیم که این سیستم یه تعادلی رو به همراه داره. حالا اگه مخارج ما بشه 2000 دو دلار، درآمدمون 500 دلار، سیستم دیگه در حال اکیلیبریم نخواهد بود تعادلش از دست میده این موقعیتیه که نوجوانای ما درش به سر میبرن و کار ما اینه که بیایم امیگدلا رو آروم بکنیم و پریفرونتال kortex رو بیشتر فعالش بکنیم به این امید که سلولهایی که زنده میمونن و کانکت میشن در پریفرونتال kortex باشه به جای امیگدلا چه جوریه Uh, من uh, برای که این مسئله رو یه کمی بیشتر uh, توضیح بدم، تلاش می‌خواد که یه مثالی رو از دفعه بکنم که عملکرد امیگدالا رو ورزس پریفرانتال کورتیکس بیشتر uh, روشن کنی. شاید بعضی از شنوانده‌گانشون ما بیاد بیارن که حدوداً پنج سال پیش در جانیوری سال 2009 کابتن سالی سالنبرگر یه هواپیمای در حال سقوط رو به سلامتی در رودخونه هاتسن فرود آورد. جان همه اون مسافرا رو نجات داد و مدیا این رو به عنوان میریکل این هاتسن اون وان کار. از لحاظ علمی ما اگه بتونیم یه میریکل یا معجزه رو تجزیه و تحلیل کنیم، میتونیم اون معجزه رو به کرات به وجود بیاریم. دیگه اون معجزه نخواهد بود. ما تونستیم که به عنوان یک اصل قبولش بکنیم. بذارین یک کمی بیشتر این پرواز رو ما مطالعه بکنیم. این پرواز مجموعه آن از زمانی که این هواپیما از فرودگاه لاگوردییا ٹیک آف کرد تا زمانی که در هاتسن ریور فرود اومد 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. 1 دقیقه و 5 بعد از ٹیک آف، یه دای بسیار زیادی از پرنده‌های بزرگی که در حال پرواز بودن، در انجین در هر دو انجین این هواپیما گیر کردن و هر دو انجین از کار افتاد. کابتن می‌دونست که شرایط بسیار بد و ناشنachtsی در انتظارشه. در تمام صحبتایی که شون با بورج کنترل داشت درش می‌گوید که به هیچ وجه نمی‌تونه. به هیچ کدام از فرودگاه‌های اطراف که بهش آفرمیشد برگرده. و تنها راهش نشون دادن حاوپیما در هاتسم بوده. افراد بورج کنترل در آن موقع فکر می‌کردند که دارن اشتباه می‌شنن. زات صنایع بعد از آور خیابونای شلوغ نیویورک اگر این هواپیما سقوط میکرد تنها افراد داخل هواپیما نبودند که کشته میشدن. ادیزیادی در خیابونها و ساختمانهای اطراف هم قربانی این حادثه میشدن. اینجا ما یه شرایطی رو میبینیم که amygdala is super active, very hot. ولی این خاله با هم با تجربه و آگاهیش و به خاطر 하드와이어ینگ برینش در زمان نوجوانیش تونس کاملا جریان خونو از امیگدلا که مسئولیت فایت فلوایت فریز رو داشت بایپاس کنه و خون رو به سمت پری فرونتال کورتکس هدایت کنه و به خاطر این بود که تونس جون این همه آدم رو نجات بده. بعداً ازشون پرسیدند که آیا در اون مدت شما دعایی کردی گفت من 150 نفر رو داشتم که داشتم برهم دعا می کردم. من باید این دعای اونارو به سامر میرسوندم. چرا ایشون قادر بود که این کارو بکنه و احتمالاً خیلی خلبانای دیگری که اطلاعات و دانش پر واضح دارند نمی توانند این کارو بکنند. این مسئله نجابت ایشون بوده. بله، دوست دارم که رجبین ادامه بدیم بعد از آقاییا. همین سه شنبه ساعت 9 صبح خانم جیلا بادیی از شرکت فورمز رجب به انواع بیمهها و امکان سخت‌آمیز شرکت فورمز اطلاعات مفیدی با شما در میان می‌گذارند. 320، 650، 500، 500. جامع جهانی فوتبال برزیل میزبان پوترف دورترین ورزش دنیا میادگاه سیویا تیم برگزیده جهان شش تا چهار مسابقه فوتبال و در نهایت یک قهرمان همگام با جام 20 بانوی ویجی شامن آخرین اخبار و تفسیر مسابقات فوتبال جام جهانی از دو و مهجن تا 13 مه جولای 7 تا 7 نیمه شنبه ترجمه دکتر فرشید عبیر و دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران وکلا متخصص در امور بیمه سازمان پژوهشی آرم بیماری ناشنخته HIV ام را به دنیای علم معرفی کرد و در کتابهای پزشکی جای دارد. مورسی بودن بیماری را مشخص نمود. ابزارهای تست بزاقدهان برای آزمایشات همه گانی شد. اولین نمونههای حیوانی موش را تولید کرد و به گیگر مرکز پژوهشی فرستاد. فورمولهای درمانی سالیک اسید و معناک را به وجود آورد و به کمپانیهای دارویی اهدای کرد. مرحله پر اهمیت جنگرپی را بر روی مدلهای مختلف حیوانی انجام داد و سرانجام با جوابی امیدبخش از افته، مجهز از ماشین جن درمانی بر روی بیماران را دریافت نمود. و هم مکنون پژوهشات چند بیماری جنینی رایج در جامعه ایرانی را آغاز می کنند. تلگرام یک شنبه 8 جون از ساعت دوازده تا هفت بعد از ظهر. K I R N از Universal City California. اینجا K I R N 670 AM Simi Valley, Los Angeles. مرثای دانش برنامه‌ی از انجمن استادان و پژوهشگران ایران شنوندگان عزیز به برنامه مرثای دانش گوش می‌کنید. امروز مغز نوجوانان و تکامل اون صحبت می‌کنیم. قبل از آگاهی راجب سه قسمت مغز صحبت می‌کردین شما که یکی برین استم هست. ا دیگهش دیگری امگلییا هست و آخریش پریفرانتال کورتکس که اینجوری که فهمیدم امگلییا اینیه که بدون فکر و بدون هیچ گونه تعملی ستا کار انجام میده یا اینکه فرار میکنه اگر یه چیزی رو دید دوست نداره یا اینکه توجهش جلب کرد یا اینکه باهاش دعوا میکنه یا اینکه وای میسه هیچ کاری ازش بر نمیاد. بله. و بهتره که این این سلولای مغزی که ما داریم که در حدود 100 میلیون الان شده مونده 90 میلیونش، 80 میلیونش مونده. ا اینا رو یه جوری بذاریم که بیشتر بیان طرف پریفرنتال کورتکس که عقل آدم شاید اونجا بیشتر داره کار می‌کنه. درسته؟ کاملا درست میگی. بله. حالا برای تینتهراپ شما انجیر که شما فرمودین در حدود 20 میلیون سل سل در دارن در سال 30 سالگی ما از 20 میلیون سل داریم ولی بین 30 سالگی تا 25 سالگی 100 میلیون از نسلی از این سل ها رو ما از دست میدیم. پس بايد فهمیشیم ما میتونیم بگیم که تینتهرا درن. They are losing half of their mind. It's a very difficult time of their life. و واقعاً همه ما این مرحله رو گذر اندیم. هیچ چیزی بر علیه تی نجرا نیسته. بله یه چیزی از که ما مقدار کنترل داشت نداریم، اما تنها کنترلی که ممکن است ایجاد شده باشه اینه که اون سلولهایی که میاد توی پری فرانترال کورتیکس رو تغییر بکنیم به جن که اونایی که میره طرف آمگلیا. بله ما البته بهم نمی‌موند که یه نوجوان تصمیم بگیره که در زمان نوجوانی یه ورزشی رو انتخاب بکنه. وقتی که یه نوجوان درگیر یه ورزشی میشه، در حقیقت سره بلوم که قسمتی از مغزه که مسئول موفمنت و کoordیناسیونه این یاد میگه که چه جوری با ماهیچههای مختلف بدنه بیاد در کامپلیت تونینگ باشه ما در أولمپیک زمستانی اگر یادتون باشه سه تا تیمیجر مدال‌های طلا و نقره و برنزو گرفتند. اینا خب برای مملکتشون یه افتخار بزرگی رو بردن. ولی کاری که اینا می‌کردن در سال‌هایی که اینا داشتن که تمرین می‌کردن این بودش که سر ابلومی ما بهش یاد می‌دادن چجوری با تمام ماهیت‌های مختلف بیاد رابطه برقرار بکنه. خب ما هر کاری که می‌کنی مغز ما به یک نحوی ام در راهبری میکنه تمام این کارها رو هر کاری که با دستمون میکنیم با چشممون میکنیم واقعا ما مغزمون میبینه نه چشممون ولی اگر اجازه بدیم برگردیم به مساله کاپیتان سالیبر به خاطر اینکه من فکر میکنم که اگر ما نوجوانی ایشون رو بتونیم یکمی بیشتر راجع بهش فکر بکنیم ما می تونیم که درس خیلی خوبی رو ازش بگیریم که چجوری ما می تونیم بهترین تصمیم ها رو در مشکل ترین شرایط بگیریم. یک کوت بسیار زیبایی از استیو جاب هستش که میگه یو کانات کانکت داتس لوکینگ فورورد. یو کان اونلی کانکت داتس لوکینگ بکورد. ما این مساله ای که ما می تونیم در مورد کاپتان سلمبرگر ببینیم که اگر ما برگردیم به نوجوانی ایشون، ایشون در سن 16 سالگی کار خلبانی رو شروع کردن. اولین مسافرشون مادرشون بود و دومی یا سومین مسافر دوست دخترشون 16 سالش بود. ایشون تو این کتاب خیلی به زیبایی داره توصیف می‌کنه که وقتی این دختر رو برده بود برای اولین راید، چجوری می‌خواست که این دختر رو ایمپرس کنه و این دختر نزدیکش بوده. موهاش روی شونه ایشون بوده ولی ایشون تنها فوکوسی که داشته این بوده که این دخترو به سلامتی برگردونه به زمین میبینیم که این مساله که ایشون تونسته یامچین لندینگ رو در سن 60 سالگی بکنه واقعا پلات این لندینگ در سن 16 سالگی ایشون نوشته شده بوده و اینکه خیلی مسئله مهمه که بچه‌ها هر کاری رو که دوست دارن توش موفق بشن در نوجوانی شروع کنن و 하드 وایرینگ مغزشون رو در این زمان انجام بدن تا بهترین اونی که میتونن بشن این اطلاعات عمر رو داشته هنوز بعد از چند سال یادش میاد که مثلا موی اون دختر خانم کجا بوده روی شونش ولی با وجود این خب. تصمیمی که اون موقع گرفته تصمیمی بوده که با پریفرنتال کورتیکسش بوده ببینین این کتاب هایست دیوتی که من همیشه به همه تینیجرایی که باهاشون کار میکنم ریکامند میکنم نه. که بخونن یه کتابی که این... اسمش هست هایست دیوتی ممکنه بازشنم نگاه بخونن بخرن هighest duty که کابتن جسی سالنبرگر ایشون نوشته اینو و توی که دوکن آهاممیم بتوانم پیدا کنم. بله مثل. نه بله. من خودم این کتابو بیشتر از هر تکس بوکیم خوندم و مم شاید هفتهها با چندین نورو ساینسیس و پرایس خودم من که سایکارتریس بوده نشستیم و براين ایشون رو در زمان این لاندینگ مطالعه کردیم. ما سعی کردیم که اون برین مپینگ رو بیایم دوباره بسازیم ببینیم که ایشون چه جوری تونسته این همچین کاری رو در بدترین شرایط بتونه انجام بده در مشکل ترین شرایط و واقعا مغز ایشون رو ما میتونیم به یک کازتی تشبیه بکنیم که همه چی سوپر اورگانیزد هینیو there to get the information no matter what the situation is. با این خب کلید موفقیت ایشون بوده دیگه. بله. آیا تمرین خب مثلا تمرینایی که خود این خلبانا میکنن ارزشی داره برای همین کاری؟ مسلماً تمرین خیلی تاثیر داره ولی مسئله این که ما چجوری fear overcombo کنی من. مسئله ایه که آرمی میاد تمام این مارین ها رو میاد بهشون یک سری ترنینگی میده که اینا بتونن امگدلا رو بایپس کنن من. و این کار خیلی خیلی مشقلیه و هر چی جوانتر باشن خیلی راحت تر میتونن این کار رو یاد بگیرن و ترنینگ لازم داره و من. ایشون بدون اینکه شاید این ریسرچو بدونه در اون زمان و فقط پرسونالیتیش بوده دیگه درست که در طول این سالها تونسته این کار رو انجام بده خب حالا اگه دوست داشته باشین ما بیایم با مشکلاتی که نوجوانها در حال حاضر با این مسائل مخ با مسائل مختلفی که باهاش دست به گریبان می‌آیند ما بیایم با این باید به این موضوعات کنیم. اما مسئله اصلی که نوجوانان امروز با اون دست به گریبان، اینه که پیشرفت‌های تکنولوژی خیلی سریع تر از پیشرفت‌های نورساینس تفاف می‌آفده. ما هیچ راهی نداریم که علم شناخت مغز رو بتونیم به اون سرعتی پیش ببریم که تکنولوژی داره پیش میره. مسائل تفریحی که نوجوانان سن بسیار کم با اون در ارتباطن و ساعت‌های خیلی زیادی رو که با اون می گذرونن میتونه اگر به درستی استفاده نشه و این خیلی مسئله مهمیه اگه به درستی استفاده نشه با مراحل تکاملی مغزشون تضاد طقان ناقص پیدا کنه. یعنی این تلفن می دونم سلول نای که وجود داره سلول نای سمارتی که وجود داره تلویزیونایی که وجود داره ایپاد ایپاد اینها همه این که وجود داری که الان تی نجراتو دستشون هست و موقعی که ما تی نجر بودیم تو دستمون نبود الان این پیشرفت تکنولوژی اینارتو دستشون گذاشته ولی ما هنوز آشنا نیستیم که چه اثری روی مرزشون میذاره خب ببینید مسئله اینجاست که بعضیها وقتی که در اینترنت هستن حالا ایمیل دارند لذا بعد فیس بوکی مساجی بروشوم میاد بعد باید اینو شر بکنند بادی کاران بچه ها فرصت تمکز کردن راجع به یه مسئله رو ندارن و یک مسئله ای که حالا وجود داره یه تیانجر امروز اسپام انتشنش خیلی کمتر از تیانجری که 15 سال پیش تیانجر بوده. به خاطر به خاطر تمام این پیشرفت های تکنولوژی و این مساله که مغز این فرصت رو نداره که اطلاعاتی رو که به دست میاره از شورت ترم میموری ببره به لانگ ترم میموری کنسولیدیت کنه و این رو در پری فرانتال کورtex هک کنه و بذاره بمونه یعنی اگر ما یه تینیجری که از تو لس آنجلس هست رو مقایسه بکنیم با یه تینیجری که توی قبیله تو آفریقا هست که ممکن است یک کدوم از این استدلال نهید باشه مغزشون فرق میکنه. آخه این خیلی مقاله سیه براڈی من نمیتونم این کارو بکنم ما باید دون میدونین از لحاظ سنتیفیک ریسیچ ما باید دوتا شرایط همسانه بیاریم من میتونم یه تینجری رو مقاله سبک کنم که دو ام فیس تو یه فیسبوکو اینترنت وقتی سر کلاس با یه تینیجری که تو همون کلاس میشینه و همون آی کیو رو داره ولی آ... می دونیم داره تمرکز میکنه می رو 100000 ریال. <تصفيق> خب می دونیم باید مقایسه ما در شرایط نه. مناسبی باشه دلست. که ما بتونیم یه دیتای دقیقی رو داشته باشیم. نه. ولی یکی از مواردی که در مورد اون تحقیقات زیادی شده مساله بازی‌های بسیار خوشونتا میز ویدئویی. که اکثر نوجوانا به خصوص پسرای نوجوان وقت زیادی رو با اون میگذرونن بچه‌ها وقتی بازی‌ها رو میکنن باید وارد دنیای مجازی یا ورچوال ورلد بشن و باید با اصول و قوانین دنیای مجازی که بسیار با اصول و قوانین دنیای واقعی متفاوت هستش آشنا بشن و باید این قوانین رو دنبال کنن متاسفانه یک اصل مهم این بازی‌های پرخوشونت دنیای مجازی اینه که هر چه بیشتر بچه‌ها بتونن خشن‌تر باشن، بتونن بیشتر بکشن، بتونن طرف مقابل رو دیفیت بکنن، موفقیت بیشتری داره. در دنیای مجازی ما می‌دونیم که در دنیای واقعی این اصل صادق نیست. و این در مغز در حال رشد و آسیب پذیر یک نوجوان بعد از ساعت‌های خیلی زیادی که این بچه مشغول این بازیه میاد اتفاقی که انجام میفته در مغز خوشونت و موفقیت با هم پر میشن یه اصل مهمی در مورد مراحل تکاملی مغز یک نوجوان وجود داره اینه که the cells that fire together will wire together اینجوری که ما میبینیم خوشونت و موفقیت با هم در مغز بچه‌ها فعال میشن و با هم هارد وایر میشن و این یه مساله اساسی است که ما داریم. <تصفح> <تصفح> ولی ما امیدوارم که این مساله باعث سوء تفاهمی برای شنونده ها نشه. یکی از بزرگترین شانسایی که ما در زندگی در این دوره داریم پیشرفت های تکنولوژی که باعث بهتر شدن زندگی همه ما شده. تکنولوژی امکاناتی رو در اختیار ما گذاشته و میذاره که کاملا دنیا رو متفاوت کرده. من در یو اس سی افتخار آشنایی با یه اپتومالوژیستی رو دارم که ایشون پی اچ دی هم در بایومدیکال انجینیرینگ دارن و ایشون مخترع اولین آرتفیشال رتینا هستن. یعنی نیچر نعمت دیدن رو از یه انسان‌هایی گرفته و ساینس بهشون برگردونده و تکنولوژی ما نمیتونیم منکر تمام این ا حبای تکنولوژی بشیم ولی واقعا باید بدونیم چه جوری ازش استفاده بکنیم اما همونجوری که ما قانونی می‌ذاریم برای مثلا رانندگی که کمتر از 18 سالگی اجازه رانندگی نداری ممکنه به خاطر این اطلاعاتی که شما دارین جمع می‌کنین در آینده همچین قوانینی رو بذاریم اگه اجازه بدین برگشتیم به آگاهی‌ها برید یک 2 دقیقه‌ای و میایم خدمت شما با کیترینگ ما بهترین پذیرایی را از عزیزانتان انجام دهید. یک تا شاخص کیترینگ ها در لس آنجلس با بیش از 15 سال سابقه درخشان. رستورانی یک تا بی‌نظیر و بی‌همتا، هماکنون با سرآشپز ایرانی انواع غذاهای ایرانی را برایتان کیترینگ میکنند. ما را با سایر کیترینگ ها مقایسه کنید تا صداقتمان را باور کنید. تلفن ما 310 444 9422 واقع در 11925 سانتا مونیکا ویو. هومن نیسانی و آرایان نیسانی دو چهره شناخته شده و موفق جامعه ایرانی افتتاح دیلرشیپ های هومن هوندا و هومن جیپ را در لس آنجلس باگاهی میرسانند. و به همین مناسبت فقط و فرات تا پایان این ماه شما می توانید یک جیپ چروکی 2014 را با فقط ماهی 189 دلار لیز کنید. تعجب فرمایید فقط با ماهی 189 دلار یک جیپ چروکی را لیز کنید. به دیل رشیپ هومانجیپ در تاریخ 405 و, و مانچستر تا شیبی آورید و از قیمتوی بین نزیر و سرویس عالی ما بهرهمند شوید. تلفن کد سیصد و ده دویست هشت سف حشت سف حشت یکبار دیگر سیصد و ده دویست هشت سف حشت سف حشت لیس کریسلر برای 189 دلار پس تاکس با 1500 دلار دان 24 ماه کلودن لیس آن اپروف کریت از طریق کریسلر فنیشنل سرویس‌ها بر اساس 12000 مایل در سال 15 سنت بر مایل اضافه. هومان جیپ دو ۸:۰۰ صبح لس آنجلس. مارس های دانش برنامه از امروزشنبه سادن و پنجوش گراین ایدامی. شنوندگان عزیز به برنامه مارس های دانش کش می کنید. خدمات خانم دکتر تینا گیفراه هستیم که راجب. هتا کومون مغز نوجوانان بیشتر دارن صحبت میکنن دوستانی که سوال دارن خواهش میکنم به تلفن 323 512 7264 تلفن کنن یک چند دقیقه دیگه شروع به پاسخ سوالات خواهیم دارن. بفرمایید. یه مسئله دیگه ای که ورچوال ورلد به وجود میاره اینه که نوجوانا به خاطر اینکه با دنیای واقعیت فاصله میگیرن، انتظار دارن که در دنیای واقعی هم همه شورتکات هایی که در اون دنیای مجازی وجود داره وجود داشته باشه. برای همینه که جوونا دوست دارن بدون زحمت موفقیتو به دست بیارن ولی در دنیای واقعی ما میدونیم که پشت سر هر موفقیتی سیو کوشش فراوون و پشت سر هر سیو کوشش فراوانی اشتیاقی هستش و پشت سر اون اشتیاق عشق و علاقه ای که به اون هدف وجود داره من یه مسئله‌ای رو که خیلی دوست داشتم که بتونیم یه چند دقیقه راجع بهش وقت بذاریم و صحبت بکنیم واقعاً این آنفورچونیت ایونت شوتینگیه که ما به کرات می‌بینیم. این شوتینگ آخری که در یوسی سن باربارا اتفاق افتاده بود ما می‌دونیم که یه عده زیادی بی‌گناه دانشجویی که رفته بودن بر اشرامشربشون یه چیزی رو بگیرن به قتل رسیدن. آقای دوستان عزیز شنواهند به مصاحبه یه پدر یه که از این دانشجوان بیکنایی که در این شوتنگ آخر کشته شده بود کشته بوده باشند یه که از مسائلی که ایشون درباره سوپات میکردند این بود که ترا تمام سوپاتها در مورد کسیه که با اسه این قتل شده ایشون از میام میخواستن که بیشتر در مورد قربانیان این حادثه و اینکه اینا چه انسانای خوبی بودن سوپات بکنن در حالی که من واقعا احساس این پدر دخدر رو می فهمم و بهش خیلی احترام میذارم و واقعاشون حق دارن که یامچه خواسته ای رو داشته باشن ولی ما باید به این مسئله توجه کنیم که ما هیچ راهی نداریم که قربانیان خدا این کرده اگر هادسایی بعدی وجود داشته باشه پیش بیای بکنی اینا واقعا کسانی این هستند که در راین تایم در راین پلیس ممکنه باشند. امیدواریم که به هیچ وقت این هادسه دوباره تکرار نشه. هم اما ما ناچاریم یه سری پیشگیری هایی رو داشته باشیم و بتونیم که از بروز یا همچین هوا دستی هفولی جلوگیری بکنیم. ما با تحقیق کردن درباره کسانی که مرتکب یا همچین قتلایی میشن، میتونیم همچنین که چه کسی ممکنه. این هاد سر و دوباره در محل دیگری به وجود بیاره و امیدواریم که را یک راههای پیدا بکنیم که بتونیم از این هاده اصلا اتفاق افدا دانش درگیری کنیم. باقیات اینه که ما شانس بیشتری داریم که بتونیم با یک زری به دقیقی نفر بعدی که ممکنه یه همچین کاری رو بکنه شناسایی بکنیم و امیدواریم بتونیم از پروازی همچه هوا دستی دارایاند جلوگیری بکنی. مسیحرا دی، امیدوارم که این کار به زودی انجام بشه. اگه جز بدین بریم به پاسخ سوالات دوستانی که روی خط هستن. به فرمان از شر تون بخیر. آلود سلام. سلام عزیزم. خیلی ممنون سلام که دوستم داشتم. خیلی ممنون این افلاطون پس ببینم این بات چهار از چه ساعتی برای چیستی باید تو اتاق جدا خوب نیست؟ بات یه دو ساله به تبلرش بورسیدی گفته با ابرم من خودم میخوام خانم عزیز ای کاش که من این اطلاعاتو داشتم، من متاسفانه سایکولوژیست نیستم و راجع به اینا هیچ اطلاعی ندارم. من اطلاعی که دارم راجع به ام سخت افزار مغز ما اگه مغز رو مثل کامپیوتر بدونیم من سخت افزار مغز تینیجرها رو میدونم ولی متاسفانه راجع به این شاید دکترای سایکولوژیست خیلی بهتر بتونم بگم من نمیخوام اشتباهاً چیزی رو به شما بگم خیلی ممنونم میریم به پاسخ دوست دیگه‌ری بفرمایید خواهش می‌کنم روی خط هستی سلام از شما ببند هست؟ بله بله بفرمایید. قربون شما. های. من سوالی داشتم، فکر کنم خانم دکتر وجناب، اینه که مشاهده من این بوده که شما در فمیلی در مورد پری فرنتال کورتکس بیشتر این من یه چیزی که واجده شده ما بچه‌هایی که ا دی اچ دی دارن اگر مادر و پدر ولی بیشتر مادر داشته باشن که اون مادر خیلی آرگانایزد باشه. این بچه ها رو دیسپلینشن رو بیشتر تو تریتم بازد باشه و اعتقاد داشته باشه که برای بچه ها بسیار تریتم کورس را فالو بکنند. این بچه ها بهتر جواب میدن. یعنی پروگنوستیشون به داری با... از بچه‌های سیمیلار که مادرشون کر نمیکنه اینا رو گذاشته بهش برای خوبن دارن تراپی میرن دیگه و بعدم مشغوله تو خونه نمیاست سوپرووایز کنه و اینا این بچه‌ها عموما تریتمنت از کامشون خوب نیست و سوال من اینه که این مسئله اینتنشنالیتی که لوکیز میکنن تقریبا به فرانتال کورtex و پریفرانتال کورtex می افتره external has thinkdish که بچه‌ها چون اطلاخ حتما داره شما به هرسمه که کار پریفرانتال کورتکس ترمز کردن امپالس یعنی این اینهیبیشن امپالس و اینه که این استرنالتی یک از خارج اگر از کمک بشه فرانتال فرانتال کورتکس دات کنتریبوشن ایش به جلوگیری از این پالس بیهاویرز خیلی کمک میکنه و هم خیلی مأزرد میخوام اگر اجازه بدین جواب ساده بدن در این که خیلی خطا هم روشن میشکند. بله، ببینیم پری فرانتال کورتیکس همونجوری که گفتیم این هیبت میکنه و جلوگیری میکنه از اینکه ما ریاکشن داشته باشیم. اجازه میده که ما مسائلو تجزیه و تحلیل کنیم و راه درستی رو انتخاب بکنیم. کاملا درست میگیم. اگر که ما داریم آرگانایزد باشیم و بدونه چی کار میکنه، این ما قسمت مهیتی رو داریم مناسب میکنیم. چون تمام بیماریای روانی یک قسمت جنتیک داره و یک قسمت مهیتی. بله شما در این قسمت مهمی رو بهتر می‌کنید و قسمت جنتیک رو که خوب ما کاری را جبرهش نمی‌تونیم بکنی، بلی حرفتون کاملاً درست. متشکرم دوست دیز به فرمانشو مبرو خواهی اس؟ آره تو میخوای خسته نباشین؟ متشکرم دوست استاد دارم. یکی اینکه این فرانتولوب اگر که در شش ماهه یه بچه آزمی خورده باشه ترک خورده باشه خونریزی زیر پوست کرده باشه خونریزی شدید آیا آستی برای تسلیم گیرش میزنه در بزرگسالی و سوال دو خیلی هم مهمه برام و سوال دومم اینه که گفتین اموکدولا رو تقویت کنن بیش از خواهش کنن بگیم چه جوری تغذیه کنن. به پخشیدن خانم، ما اول باید این رساله دومتون رو جواب بدیم. ما امیگدالا رو نمیخوایم تغذیه کنیم. امیگدالا آرایدی در زمان نوجوانی بسیار فعال است. ما میخوایم که پریفرانتال کورتیکس رو تغذیه کنیم. ولی اون سؤال اولیتونو که شما پرسیدین مبنین هر ضربه مغزی میتونه یه تأثیری داشته باشه ولی هیچ کسی بدون اینکه اون برین ایمیج رو ببینه نمیتونه چیزی بگه و من پزشک نیستم شما باید با نورولوژیست با کسی که این برترو همیشه تحت نظر داشته صحبت بکنیم و فقط اون نورولوژیستی که می‌بینه بر اساس برین ایمیج میتونه به شما یه نظری بده ولی اگر می‌خواید بدونید که چه جوری پری فرونتال کورتکس تقویت می‌تونه بشه من فکر می‌کنم یکی از بهترین راهاش مت می‌دونیم وقتی بچه‌ها درگیر تست م... حساب و کتاب میشن این آ... اون لاجیک و منطقی که در پشت تمام فرمولای ریاضی هستش با اس تقویت پریفرونتال کورtex میشه یا وقتی میرن توی نیچر به خاطر اینکه تمام فرمولای طبیعت بر اساس منطق نوشته شده اینا با اس تقویت پریفرونتال کورtex میشه حتی برای آدمهای موسنتر حتی برای آدمهای موسنتر همیشه ما نوروجنیسیس که ساخته شدن سلولهای مغزه در هر سال نداریم، ولی اون می دونین پیکش بین 13 تا یعنی در جوانیه. متشکر. دو سال 13 به فرمان این رو خت هستی؟ سال پسالوم به چند سال از پنمه دستی داشتم. به فرمان. ایشون فقط تجربیاتشون داشتی در خاصیم فقط برای بچه ها استفاده سالمند چطور می تونن توضیح بدن که بپاشیم. ببخش... معذرت می خوام ولی من تخصص یعنی قسمتی رو که بیشتر روش کار کردم در تمام این سال‌ها مغز تینیجر بوده نوجوان‌ها متأسفانه من اطلاعات زیادی رو در مورد بزرگسالان ندارم ولی مطمئنم کسانی هستن که اطلاعات مفیدی رو میتونن در اختیارتون بذارن متشکرم دوست عزیز بفرمایید سلام سلام من فردا مسکن دکتر در مورد تیله جراث، به خصوص تمرکز کردم رواد ایتیا، یعنی آدیکشن. اما من فردا میگم اینکه آیا آدیکشن در تیله جراث بعثات بهبود میشند؟ این آدیکشن رو ادامه فردا میکنم. آیا این شر رابطه ای بین آدیکشن و فریضهای معنی اینجور آدمها، و یا یک کرولشی بین این دونات؟ این این دو رابطه کدی دن یا ندند؟ و اگر دند، چه اتفاقی پدید میکند؟ به بنده ما یه یه چيز رو که صد در صد ميدونيم اگر يه تينيجري درگيري مشروب كردن يا دروغ بشه اون دروغ يا مشروب الکولي فقط برای مدت كوتاهي روی مغزش تاثير نميذاره ممکن است اگر يه ادالت مشروب بخوره يا اتيادي را داشته باشه در يه مدت كوتاه مغزش رو آسیب بزنه ولی برای تینیجر این آسیب برای تمام عمرش خواهد بود و برای همینه که خیلی مهمه که تینیجر رو به هیچ وجه درگیر مسائل مشروب خوردن و دراگ نشن چون به پری فرنتال kortex شدیداً صدمه میزنه مچکرام خیلی ممنون متاسفانه وقت دیگیری ندارییم از وقتمون هم گذشت جناب آقای حشیر دلم دوما دوام می کنه یه کوچولو <تصفيق> خیلی ممنونم مچکر از تشریف فرماییتون و امیدوارم که اطلاعاتتون برای تمام دوستان قابل تجزیه و هضم بود مچکرام خیلی ممنون تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم خدا نگہدار